اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و والسلام علی نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض می‌کنم ان که لطف الهی در صحت و سلامت کامل هستید و انشاالله که با اینایت و منت الهی هر گونه گزند و بلایی هم از شما به باشد تا و عبادات شما هم مقبول درگاه خدا مند متعال و, و انشاالله خدا بهترین تقدیرات رو برای شما در لیالی قدر تقدیر فرموده پیشا پیش, پیش سعید فقر رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم این که از خداوند میخواهم که بهترین هدیه رو و بهترین ایدی رو به شما بده و صحت و سلامتی و موفقیت قرین شما باشه ما در عبیات قبل خودمون به اینجا رسیدیم که در وصف آقای سیفالدوله الدوله متنبی اینطور گفت افی کل یومن و دومست و مقدمان و علل اقدام للوجه لا امان بعضی اینو اقدام مثل کتاب ما و بعضی نو سخستش اقدام یعنی یورش کردن حمله کردن اقدام جمع قدمه یعنی قسمت جلوی پا درست هر دو وجهه نقل شده هر دوتاشم معنا صحیحه میگه یعنی آیا هر روز در هر روز این دو مستق اقدام میکنه در حالی که پس سر او بر این اقدامش یعنی بر این یورشش یا علل اقدام یعنی بر این یورشش علل اقدام یعنی بر قسمت جلوی پاش پشت سر او بر قسمت جلوی سر پای او درست شد لن وجه لا ایمن ملامتگر است وجهش ولی خب اونی که صحیح به نظر میرسه گرچه اقدام هم به زور درست شده قسمت جلوی پا برای اینکه با قفا و وجه مرات نظیر داشته باشه اقدام با قول خودمون صحیح داره چون میشه پشت سر او ملامت میکنه روشو میگه روت باید به طرف دشمن باشه بری خاک برو سر این رو که من پشت سر رو داده به دشمن داره فرار میکنه ملامت میکنه پشت سر او صورتش رو درست شد به خاطر چی؟ علا اقدامه بر حملهی که او کرده اقدامی که او کرده کاری که او کرد. این بیت آخری بود که خوندیم که اقدام از نظر معنایی بهتره که اگر ما بیت رو چینش کنیم این قفاهو میشه مبتدا لائمون میشه خبرش وجههو میشه مفعول لائم علا اقدامهی میشه جار و مجرور متعلق به لائم یعنی پشت سر او ملامت کننده است صورت او را بر این کاری که کرده بر این اقدامی که انجام داده افی کل یعنی دیگه غلط میکنه این دو دومستق در روزی بیاد و بقول خودمون حمله کنه در حالی که پشت سرش صورت او رو ملامت میکرده بر این اقدامی که کرده بر این حمله که کرده که حمله منجر به این شده که شکست بخوره و فرار کنه و پشت سر رو به دشمن به افی یومن زد دو مستقه این به منای حاضر بود این مقتده هاست از دو مستقه از مقدمان خبره اون فی کل یومن متعلق به مقدمه یعنی اها زد دو مستقه زد دو مقدمان فی کل یومن در حالی که قفا لا ایمان وجهه و الا اقدامه خب این دیگه تقریبا همون چیزی که باید توش جابجا بشه گفته بشه یعنی اگر به شکل نصر بنویسیم آه اینطور طور میشه ها ها ذا دومستقو موقدمان دی کل یوم تعالجماش هم دیگه راحت میشه دیگه احازت دو مستقو مقدمان مقدم یعنی حجوم کننده اقدمه یعنی حمله کرد رو آورد احازت دو مستقو مقدمان فی کل یومن این جمله جمله حالیه میشه قفاهو لا امان وجههو الا اقدامهی در حالی که پس سر او ملامت کننده است صورت او رو بر این یورشش علل اقدام به قول نحوی ها الفلام عوض از مضافن لیه یعنی اقدام اقدامهی بر این یورشی که گرده پس سر او صورتش رو ملامت می کند این معلوم شد حالا بیت بعد همین بحث رو پیش میکشه ولی قشنگ میگه ایون کر رو ریحل لیسه حتی یه و قد عرفت ریحل لیوسه به انسان شجاع رو تشبیه به شیر میکنه. این دیگه متداوله ایون کرا یون کرا فایدهش فایدش میخوره به دومستد آیا انکار میکنه این آقای دومستق بوی شیر رو، این شکارها مثل آهو نمیدونم فرض کن که عوض این بهائم ام چارپایان که شکار شیر میشن، خواه خب؟ اینها یکی از چیزهایی که متوجه میشن و فرار میکنند و جلوی شیر نمیان چیه؟ بوی شیره لذا شیر هم اگه تو این راز بقاها دیدید حمله از طرفی میکنه که نسیم و باد نمیوزه یعنی زیرکه چون بوی شیر رو احساس کنن فرار میکنن میگه این آقای دومستخ عجب احمقی بوده که از حتی چارپایانم کمتر بوده که بوی شیری مثل سیف و, و متوجه نشد که فرار کنه بلکه اومد جلو و اقدام کرد ایون که رو ریحلی ریحل اللیفه حتی یذوغهو یعنی حتی یزوغهو یعنی الی أن آیا انکار میکنه بوی شیر رو تا اینکه اونو بچشه یعنی تا اینکه شیر بیاد و یغشو بگیره مثل اینجا انکار کرد شجاعت سیفت دوله و وجود سیفت دوله و غیره تو اینکه سیفت اومد خوابون تو گوشش فرزندش رو به اسارت گرفت و کشت لشکرش رو شکست داد اون موقع فهمید چه نفهمی کرده ایون که حلی، ریحل لیفه حتی یزوغهو حتی یزوغهو یزوغه. یعنی الان یزوغهو یا الا ان یزوغهو مگر این که بچشت. چون حتی بعدش هم بیاد یا به, یا به معنای الانه یا به معنای الانه یا به معنای لعنه یکی از این ستا اینجا بیشترش به معنای الان یا الان معناش درست میشه و قد عرفت وواوا حالی است وقد عرفت ریحل و یوسل به و حالا اینکه میشناسه بوی شیرها رو جمع لیسه البهائم ام جمع بحیمه چارپایان این چارپایانی که حیوانن هم بوی شیر رو میشناسن و به محض اینکه بوی شیر به مشامشون بخوره فرار میکنن این چطور بوی شیر رو نفهمید تا شیر اومد یقش رو گرفت آقای سیف الدوله. قشنگ گفته ایون که رو ریحل لیسه ریحل لیس مفعوله ایون که روست حتی یزوقهو حتی عرف جره متعلقه ایون که رو وقد عرفت بابا بحالی با است وقد عرفت ریحل لیوسه البهایم البها فائله وقد عرفت فکر نمی کنم چیزی رو تو این بیت من برای شما باقی گذاشتم. یعنی شما فقط اینجا منظورش از این که حتی بچشتش یعنی حتی اینکه تجربه کنه دیگه یعنی کاملا نمس درکش کنه درست شو؟ بی میگیم چشیده این کار رو یعنی آزمایشش کرده تجربهش کرده فهمیده درست حتی توی عربی هم میگن میگن مثلا زاغ زیدون ما انده فلان مثلا زاغ زیدون ما انده امره یعنی تجربه کرد چشیده زید اونی که پیش امره اون چه پیش امره است تو زید چشیده یعنی امرو تجربه کرده با قول خودمون توی این بیت در واقع میخواد توهیم بکنه دیگه میخواد بگه که سیف و دوله شیره و این آقای دومستاخ حتی از چارپا هم نفهندر و داره و خودش رو به یه همچین بدبختی در مقابل صیف و دوله قرار داد خب اینم این بیت که کاملاً معلوم شد. بیت بعد میگه و بعد و وابن او به سهرهی و به سهره حملات الامیر امیرالکوا گفتیم که تو اون جنگ پسرش دامادش رو به اثارت گرفت و کشت و خود این هم زخمی شد و فرار کرد اینو ما قبلا برای شما گفتیم و بعد فجع تهو ببنهی و ابن سهرهی سهرهی و به سهر یعنی داماد حملاتو لعمیره لقواشم فجعهو یعنی فاجعه بش زد تو لغت میشه رزعهو عصابهو رزعه با همزه یعنی مصیبت زد رزعهو بشه این یکرم علیه یعنی مصیبت زدن به کسی به چیزی که براش ارزش داره یه چیزی که ارزش داره شما مصیبتی بهش وارد کنید اون شخص میگه فجعتوه یعنی مصیبت زدم به او بدبختش کردم تو یه چیزی که براش ارزش داشت حملات بوده میگه حملات داشت این به وزن شعری حملات گفته نیم رو ساکن کرده اینم صحیحه به خاطر ضرورت شعریش سهرم که یعنی داماد این میگونیم دیگه چیزی توی این من پیدا کنم که لغتی باشه بگم فجعه رو که گفتیم در ببنهیم و بن صرهی و بن صرهی و پسر دامادش و به سر و خود دامادش حملات امیر القواشم ببینید کتاب ما کتاب ما نسخه ای که دست ماست نوشته فقط فجعتهو به ابنهی فجعتهو یعنی تو فاجعه و مصیبت زدی به این دو مستق به واسطه پسرش ابنهی و ابن سهرهی جای ابنهی و به واسطه پسر دامادش پسر خودش رو پسر دامادش رو به قول خودمون ازش گرفتی به این واسطه بهش مصیبت زدی و به سهر شو. و با سهر خود دامادش به سهر عطفه به جای ببنه هی. یعنی و به سهره یعنی و به سهره یعنی و به سهره الف لاز از مضافه نره از به جای ببنه هی. این تا اینجا وقت فجعته ببنهی و ابن سهره هی و به سهره حملات و در امیر قواشم شد این القواشم هم صفت حملاته حملات هم که اضافه شده به امیر قواشم یعنی درهم کوبنده دروش شد تباشم یعنی در هم حملات یعنی هجوم ها اینم که بلدی دوری چیزی نداره فقط اگر نگاه کنید تو این بیت اونی که قد فجعتهو نقلش کرده که مثل کتاب ما باشه غلطه بلکه مثل دیوانش مثل کتاب های دیگه که هست باید نقل بشه وقد فجعت خود وقد فجعت اون حملات که حملات باشه اون میشه فائل فجعت خود بروش قائله بگو فجعات چه فجعت حملات و امیر القباشم و قد فجعت های یعنی چی میشه اون موقع ترجمهش میشه مصیبت زد به این دو به واسطه پسرش و به واسطه پسر دامادش و به واسطه خود دامادش هجومهای های امیر این حجوم ها میشه فاعل بجرد حجوم های امیر حجوم های درهم شکن خورد کننده درست شد حجوم ها و حملات امیر حملات درهم کوبنده این کار رو کرد و او را به مصیبت انداخت و به واسطه پسرش و پسر دامادش و خود دامادش درست خب پس قواشم گفتیم یعنی در همکوبنده اصل قواشم یعنی با قول خودمون حمله ای که هر کی بیاد جلوش درو میکنه مهم نیکی جلوش باشه اینا میگن حجمتان قاشمه این روز درامش درام کننده همین هر کی گیرش بیاد از بین میبره پس وقت فجعته فجعته ببنهی و ابن سهرهی فجعته هم با وزن شهر درسته وقت فجعته ببنهی و ابن سهرهی و به سهره حملاتو لعمیر لقواش خب بازه خیلی زور زدن درست کنن فجعته رو خب من اومدم گفتن مثلا و به سهره که میرسه تموم میشه وارد میشه و قد فجعتو فجعتو ببن ه و بن زهره و به زهره یعنی مصیبت زدی تو به دو مستو به واسطه پسرشو به واسطه پسر دامادشو و به واسطه خود دامادش بعد این جمله گفتن حملات الامیره حملات الامیره القواشو حملات امیر و جمعای امیر دراو کننده است یعنی این جمله حملات امیر و مبتده گردن قواشم خبر یعنی زیرا حجوم کننده تو در هم همکوونده است یعنی یه جمله باشه که دلیل اومده تو مصیبت زدی به او و, پسرش و پسر دامادش و خود دامادش چون حملات امیر یعنی حملاتو که چون حمله های تو حمله های این امیر بزرگوار سیف دوله، القواشمو دوله در همکومنده است این حملات کسی جلوش مقاومت بگیر نمیتونه بکنه درست شد پس قواشم معنا کردیم یعنی اینکه هر هرکی جلوش بیاد رو میگیره بعضیا معنا کردن یعنی جان ستان آه یعنی روحشون رو روح هر کسی که بیاد رو میگیره جون هر کسی به که بیاد میگیره در هم کومنده و اصل لغتش به معنای اینه قاشمه یعنی اونی که ریز و درشت همه از بین میبره فرقی نمیکنه کی جلوشه همه رو در هم میکنه پس اگه بخونیم وقت فجعت ها خیلی راحت داره چون اون هم لا امیر میشه فائل و القواشم میشه بگید صفتش صفت حملات معنام راحت میشه میگه و به تحقیق مصیبت زد به دومستق به واسطه پسرش و به واسطه پسر دامادش و به واسطه خود دامادش هجومهای این امیر ما سیف جومهای های در هم شکن از به این برد اما اگر آمدیم مثل کتاب ما وقت فجع خوندیم باید و به سهر که میرسه جمله تموم میشه که خود ایشون هم یه ویرگول گذاشته یعنی اینجا تموم شد خب بعد اون حمله طول امیره علاقه ما میشه مبتداخبر. یعنی زیرا حمله های این امیر در کوبنده از کسی در مقابلش مقاومت نمیتونه بکنه ببینم تموم شد ما دیگه چون یاد گرفتیم مبحث را دیگه چند بار هم تکرار شد خب یش کرول اصحاب فی فوته زبا نما شقلت ها و اینجا داره به طور کنایه با آقای دو مستق صحبت میکنه در؟ مزا یشکرول اصخاب اصحاب یعنی اصحاب هون الفلام هم از از مزافون الیه اصحاب یعنی همراهان فیفاوتهی از زبا زبا جمع زبیه است جمع زبه است زبیه می شود زبا جمع ذبست تیغه شمشیره زبتون بازای معلفه مؤلفه تیغه شمشیر زبا میشه چی تیغه‌های شمشیر های شمشیر خامم قبلا گفتم جمع خام است یعنی کاسه سر معاسم هم میدونید حتما جمع معصم مچ دست معسم مچ دست این رو هم دانستی شد حالا دیگه راحت میشه معنی کرد میشه مزا مزا یعنی آقای دومستو یعنی شروع کرد یشکر را از مزا یعنی راه افتاد منظور یعنی شروع کرد راه افتاد یشک این حال است از برای فایل مزا شروع کرد آقای دومستق در حالی که سپاسگزاری میکرد از لشکریان خودش از خواب خودش فی در فی فوتهی در چه به تشکر میکرد از اونها فی فوتهی در اینکه که دومستق از دست داده از زبا تیغه های شمشیر سیفت اینکه اینکه از دست داده فوت شده از او تیغه های شمشیر آه. یعنی شمشیرهای یاران سیف و دوله سیف به بدن او اصابت نکرده میگه کنایست دیگه میگه مزا رفت در حالی که شکر میکرد آن فرار کرد دیگه شکر میکرد مزا یمزی یعنی حرکت کرد فرار کرد در حالی که سپاسگزاری میکرد از یاران خودش به خاطر این که شمشیرهای سیف و دوله از او فوق شده شمشیرهای سیف و دوله او را در نیافت در این که شمشیرهای سیف و دوله به او گیر نکرده از, از خواب خودش تشکر میکرد راست چرا؟ چرا از اصحاب خودشش خودش چون اونا رو داد دم تیق اونا اومدن جلوی سیفت دوله شمشیر سیفت مشغول به با شد این تونست زخمی شو و فرار کنه وقتی میرفت میگم خدا پیدر این اصحاب ما رو بیا مرزه که رفتن جلو و اللا الان سیفت دوله منو تیکه تیکه کرده مزا میاش کرو. الا از گفتیم یعنی از خوابه بود فیخا زبان در اینکه شمشیرها او رو نگرفته بود شمشیرها به او کارگر نشده بود بما شمشیرها او رو نگرفته بود به واسطه چی؟ به ما شقلتها ها مهمبل مآسم این شقلت ها ها میخوره به زبا به مشغول کردن این شمشیر ها را ها مهم. سر این از و ول مآسم مچ دستاشون چون شما میدونید که اگر یه کسی رو بخوای، مثلا چوب بزنی تو سرش شمشیر بزنی تو سرش اول چیکار کار میکنه دستشون میاره جلو. خب اگر شمشیر خیلی کاری باشه ضربه خیلی ضربه باشه چکار میکنه دست رو قط میکنه بد میرسه به کاسه سر اونم در هم چون شمشیرها رو مشغول کرده بود دستها مچ دستها و کاسه سرها این واسطه شد به ما متعلق به فوت این سبب شد که شمشیرها دیگه نتونستن اون دو مستق رو بگیرند کاسه سر اسخاب و مچه دست اونها سبب شد که شمشیرها نتوانستند دو مستق رو بگیرند به همین خاطر دو مستق از اسخاب خودش وقتی رفت بسیار متشکر بود که این اسخاب بیونه او رو به قول خودم کنایه خیلی سنگینیه درست شد خیلی سنگینیه خب حالا اگر بخواهیم یکی که لغات رو دیگه فهمیدید معنا, معنا کنیم اینطور میشه مزا یعنی رفت آقای دومستق منظورش این شکست خورد فرار کرد یشکرال اصحاب این حال است در حالی که شکر میکرد سپاسگزار بود یاران خودش یاران خودش رو در چی سپاسگزار بود فیفوتهی از زبا در این که اونها در این که اونها در این رابطه فیفوتهی از زبا در از دست دادن شمشیرهای سیف و دوله او را یعنی اون از دست دادن شمشیرهای سیف و دوله اون از دست دادن اینجا فوتهی این مستر اضافه شده به مفعولش از زبا فائل اون فوته یعنی فی فوت زباییه مقاطره قافیه باعث شده که مزد شعر باعث شده مزد شده به مفعولش و این فایلشه یعنی اگه بخوایم سر هم به نمیسیم این طور میشه فیفوت در از دست دادن شمشیرهای سیف و دوله او رو حالا شمشیرهای سیف و دوله او رو به واسطه چی از دست دادن؟ شمشیرهای سیف و چرا از او غافل شدن اون رو از دست دادن؟ لما تو نصف دیگر لیوانش هست دما. چه لما باشه چه بما باشه این لام و با حرف تعلیله یعنی به سبب یا برای لما شغلت ها به خاطر این که مشغول کرد این شمشیرها رو ها میخوره به زبا ها مهم. سرهای این اصخاب ول معاسم یعنی و معاسم و هم از مضافون درست شد؟ این مایه لما شغلت ها مایه مستریه است ما بعدش رو تحویل به مستر میبره میشه لشغله ها مهم و معاسه مهم ها پس حالا اگر بخوایم شعر رو بخوایم شعر رو به شکل نصر بنویسیم که من گاهیغات به شما یاد میدم اینطور مینویسید مزا یعنی انظ و فر انهظ یعنی چی شکست خود. و فر فرار کرد. یشکرو یعنی دو این جمله حاله ولحال حال ش کرو ال یعنی خوااب هو فللامه و رزمه فی فوت زب ایاه، فیفوت زباییه ایا. در از دست دادن شمشیرهای های صیف او را فرار کرد و شکست خود در حالی که تشکر از از خوابوش می کرد.له این تعبیر به مستر میگه، دیگه شغل رؤوسهم هم و معاسم هم ایاها به خاطر مشغول کردن سرهای از خواب و مچه دستهای از خواب این شمشیرها رو این سرها و دستها شمشیرها رو مشغول کردند شمشیرها فوت شد از اونها دومستق و الله شمشیرها نشانه دومستق رو گرفته بودن مقاستن دومستق رو از پادر بیارم فرمانده چرا او فرار کرد؟ چون اینها به قول خودمون جانفدای او شدن حالا وقتی فرار کرد آقای دومستق داره ممنول است تشکر میکنه از این اصحابش که اینطور جون او رو نجات دادند دیگه اینقدر با این شعر ور رفتن تو دیگه هر جوری که میخواستید بفهمید فقط مستر 90 درصد اضافه میشه به فائلش بعد مفعولش میاد مثل ضرب و زیدن امرم یعنی زدن زیدن یه درصد هم تو شعرهای متنبید هست ها دیگه هم یه سق یه از سحایه بود گاهی اوقات منبا به وزن قافیه مستر اضافه میشه به مفعول خودش فاقیلش بعد میاد مثل اینجا فیفا ته صحب خب اینم تمام شد دیگه هیچ گونه جای صحبتی باقی نکس شد حالا بخونیم بعدی رو. و یفهم و سو تل الو انع اصوات سیوف اعاجنم تادین گفتش که این آقای دومسطخ از بهائم هم گودندر چون بهائم بوی شیر رو میفهمم فرار میکنن. این حتی بوی شیر که مثل صیفالدولاس رو هم نفهمید تا تجربهش کرد اومد خوابون تو گوشش حالا اینجا یه چیز جالبی رو بیان میکنه میگه و یفهمو صوت المشرفیت فیهم و هم، و. یعنی و میفهمی این آقای دومشتد صدای مشرفیه یعنی از سنوف المشرفیته شمشیرهای مشرفی شمشیرهایی که در مشارف بلندیهای یمن درست میکردن به این نوع شمشیرها میگفتن مشرفی خب اینجا مشرفیه چون صفت سیوفه سیوف مقدر المشرفیته یعنی از سیوف المشرفیه خب میگه یف همو از سیوفل میگه فهمید و میفهمد یعنی خوب فهمید صدای شمشیرهای مشرفی رو فیهم فیهم یعنی در از میگه وقتی صدای شمشیرهای مشرفیه سیف و دولو یارانشو در اصحابش شنید تق و تق و تق در کله اینا و دستا اینا رو میبرونه خوب فهمید فهمید شناخت دوزاریش افتاد به من فهمید الا ان اسوات السیوف اعاجمو این یعنی مع یعنی شمشیرهای مشرفی که تق و تق و تق کلها و دستخوای اصخاب سیف و دوله اصحاب، اصحاب، سرها و دستخوای این اصخاب دومستق رو این شمشیرهای سیف و دوله میپروندن اینا انگار یه حرفی زدن به دومستق دومستق اینو فهمید که چیه که اگه وایسی اوضاع وخیمه کلات پس معرکه از فرار کن میگه اینو فهمید با اون که این علا با اون که یعنی مع اصوات سیوفه عاجمون با اون که صدای شمشیر عجمه یعنی گویا نیست ولی اون اینو فهمید این صدای شمشیرها برای او سخنگو بود از تق و تق کومیدن شمشیرهای های سیف و دوله بر سر از خواب و دستهای اینها او فهمید اوزا پس مرکز فرار کرد با اون که صدای شمشیر صدای بقول خودمون بیان کننده ای نیست صدای است صدای است دروش شد پس یعنی چی؟ یعنی وقتی که شمشیرهای صیف و دوله و یارانش که شمشیرهای مشرفی هستند سرها و دستهای اصحاب این رو در هم شکستند صدای این شکستن شمشیرها این سرها و دستها رو این فهمید یعنی سخن این شمشیرها رو فهمید با اون که سخن شمشیرها قابل فهم نیست درست شد عاجمه ولی این فهمید دوزاریش افتاد که اگه وایسه کارش تمام است و سیف و و یارانش او رو به قول خودمون از بین خواهند برد. یعنی علم من صوت سیوف یعنی اگه خلاصه بگی. علم من صوت سویوف یعنی سیوف یاران صیف الدوله ان اصحابهو مقتولون بها فهمید که اصحابش همه با این کشته میشن وایسه هم فهمید این لشکر خورد میشه با این شمشیرها اینو از صدای شمشیرها فهمید و رارو کشید و ددرد فهمید که چکار کنه درست رو؟ و یفعم و صوت المشرفیت فیهمون المشرفیته یعنی از سیوف المشرفیت و منظور شمشیرهای یاران سیفوتا هم یعنی از خواب علا انه گفتیم یکی از معانی علا به معنای است. یعنی معن در حالی که صدای شمشیر با اون که صدای شمشیرها گویا نیست و تق تق, تق اما این حرف شمشیرها رو فهمید که شمشیرها دارن میگن ما این لشکریان رو از دمتی خواهیم گذران به تو میرسیم تورم از دمتی خواهیم گذران لذا فهمید و سریع فرار کرد خب اینم راحت بود یعنی چیز سختی توش نداشت بیت بعدو رو ببینید یو رو یو رو به ما اعتا کرد لا انجهالتن ولیکن نمقنومن نجامن که قانن دیتا خوندم یسر رو به ما اعطا لا عن جهالته ولا کن نجا منجا من قانم قانم یعنی اون که غنیمت به دست دارد. مغنوم یعنی اونی که غنیمت ازش گرفته شد درستو اینا رو بدونیم که دیگه چیزی نداره میگه که یسر رو یسر رو کی؟ آقای دومستق سر را یعنی خوشحال کرد سر را یعنی خوشحال شد یسر رو یعنی چی؟ یعنی خوشحالی میکرد این قصه مالو گذشته است دیگه یعنی خوشحالی میکرد اون بالان و یب یعنی چی؟ یعنی و میفهمید استمرار رو میفهم و خوب میفهمید اینجا خوشحالی میکرد خوشحالی میکرد به ما اعتا کرد به سبب اونچه که به تو کرده به ما اعتا کرد یعنی به لذی کرد یعنی اعتا هو آید سله مفعول دوم هست شد ما یعنی اللذی به متعلق و میگه سر ترجمه چی شد؟ خوشحالی میکرد به آنچه که به تو داده عطا کرده آنچه که داده بود چی بود؟ لشگرش پسرش دامادش پسر دامادش اینا رو داده بود به سیف دوله نداده بود که منظور اینه که این کنایه دیگه یعنی اونهایی که تو ازش گرفتی و اونها رو به قول خودمون از دم تیغ گذروندی پس خوشحالی میکرد به واسطه اون که به تو داده به خاطر اون که به تو داده مثل کسی که مثلا فرض کنید که میخوان اعدامش کنه. بخوان اعدامش کنن جونش در فتح میاد انوال خودشو همه رو میده فرض کنید مثلا یکی دوتا از عزیزانشم میده به عنوان اینکه اونها رو مثلا قصاص کنن و اونها رو بردارن این آزاد بشه آزاد که میشه خوشحال بشه خوشحال میشه. خوشحالیش به واسطه این که جونش رو نجات داده خب این داره این ای که فهمیدید سر رو به ما اعطا کنه میگه لا عن لا عن این لا عن جهالتن یعنی ان علمن لا عن جهالتن این لا عن جهالتن از به جای معطوف مقدری معطوف علی مقدره یعنی میفهمید و این کارم خوشحالی رم میکرد نه از سر نفهمی نه از سر نفهمی یعنی از سر فهم از سر علم این کارو رو میکرد نه از سر نفهمی میگم یکی میگم بچهشو داده مالش هم داده واسه که جون خود نجات بده یه از سر نفهمی بود نه نه این یه از سر نفهمی نبود میفهمی پس اینطوره طوره رو به لذی کهو ان علمه لا عن از سر فهم. میفهمید و نه از سر خریت این کارو کرد جهالت. بلکه میفهمید خوشحالی میکرد از اینکه این چیزها رو داده به تو و جونش رو نجات داده میگیم مگه میشه این از سر نفهمی باید میگه نه ببین ولکن نمقنومن نجامن که قانمون ولکن چون مقنومن غنیمت زده ای که نجامین که از دست تو نجات پیدا کرد، جونش رو به در برده. اونی که غنیمت داده و جون خودشو نجات داده از تو قانمون خودشو غنیمت گرفته حساب میکنه. آگه همین که تونست جونشو نجات بده؟ ولو همه رو هم غنیمت داده خسارت داده تون داده این خودش رو پیروز میدونه قانم میدونه میگه چون هر کسی که هر کسی که مغنوم هستش یعنی تلفات داده غنیمت داده نجامین که صفت مغنوم و نجات پیدا کرده از تو تلفات داده از تو نجات پیدا کرده این مقنوم قانمه قنیمت گرفته است قنیمتی که گرفته چیه؟ جونشه درست شد؟ میگن جونش رو ورداشتید و فرار کرده همه چی رو مسته است شد مناش باید چی شدید؟ یوسر رو به ما عطا کرد لا عن گاهی اوقات معطوف الک میفته این لا حرف عدفه یعنی عن علمن لا عن جهالت درست شو عن لا عن جهالت درست شو ولکن مغنومن نجامن که نجامن کرد جمله صفت مغنومن آنمان خبر دان کننده مغنومن اسمش دیگه راحت شد ما این رو فهمیدیم خب قشنگ میشه یوساج رو یعنی خوشحالی میکرد تو پوست خودش نمیگونی به خاطر اون چه که داده بود به تو اتمام این لفظ عطارم آورده یعنی تقدیم کرده بود به تو لشکرش پسرش پسر دامادشو همه اینا رو تقدیم کرد به تو خوشحالی هم میکرد این میگه نه از سر نفهمی بوده بلکه میفهمید و این کارو میکرد میگیم چطور؟ میگه چون کسی که قنیمتی بدهد و جونش رو نجات بده این قانم حساب میشه قنیمتگی حساب میشه چون جون خودشو نجات خب دیت بعد میگاه. نگاه کن لکل به دور لذیلیه و فا این نکم معطیه و این نازم حالا یه مقدار داره خودش رو هم یک کمی مده میکنه و سیف و هم خیلی بالا میبره و سیف و رو هم خیلی بالا میبره خلوط این کلمه در در که میدونه چیه دیگه در رو خب؟ این کلمه در اینجا استاره است منظور یعنی شعر خودش که شعر خوب رو شعر قشنگ رو تشبیه به دور میکنه میگه که لکل حمد لکه خبر مقدم الحمد مبتدا ما این لکل حمد لکه که مقدم شده مفید حسره یعنی همه ستایش الحمد الفلام داره الفلام جنسه یعنی همه همد و ستایش همه همد و ستایش ها برای تو است فدر در این شعری که نیه لفظه در این شعری که لفظش مال منه الفاظشو من چیدم یعنی لفظش مال منه معناش مال من نیست و معناش مالی که میگه معناشو تو ساختی تو شجاعت کردی تو تو مستق رو کشتی تو حمله ور شدی تو قلعه حدس رو نجات دادی تو کذا و کذا این معانی رو تو آفریدی و خب من اومدم الفاظشو چیدم حالا معنا مهمه یا لفظ اون معنا لفظ خادم معناست پس همه هم در این شعر مال توست شعری که من فقط الفاظش رو چیدم معناش رو تو درست کردی خیلی قشنگ گفت جزال لکل حمد فدر لذی چرا چرا لفظش فقط من منه فئنکم اوتیه زی زیرا تو این شعر رو این دور رو دادی اذا تو نبودی من از کجا این معانی و مفاهیم رو به دست می آوردم که بتونم براش الفاظ بچینم این نکم و فئنکم اوتیه هو میخوره به دور زیرا تو عطا کننده این دور هستی و انیا نازمون یعنی ناظمو و من چیدم مثل کسی که دور رو گوهر رو میاره میده به یه نفری اون میکنه به نخ یا مثلا توی جعبه میچینه جعبه قنار ماله اونه این دیزاینره این که اومده اینا رو چیده ها؟ این در حد چینشش به قول خودمون هنر نشون داده هنر اصلی بالا اونه که در را آفرید در را آورد خیلی هم دو همدو فه در دور یعنی ف شعر دور در این شعری که مثل دره همه ی هم و ستایش ها مال توه دوری که اللذی صفت دوره لیا لفظو مال, من فقدر لفظش. لفظش فقدر مال منه فقط لفظش لفظش فقط مال زیرا زیرا فعنکه معتی زیرا تو عطا کننده این دور هستی و انی نازمون و من فقط و فقط اینا رو کنارم چیدم من هنری غیر از چینش بگید نداشت. قشنگ روست درست شد فهمید بیت بعدو رو ببینیم و انی و انی بیدم و انی و انی لتعدو و انی لتعدو سیعتا یا کف الوقا ولا انا مزمومون و لا انت نادو الا کل تیارین به رجلهی از وقعت فی مسمعی هل قما قم این دوتا رو با هم مخواهم معنا کنم لغاتش رو بعضیش رو بگم که بتونیم معنا بکنیم عبارتمونو و علمی نتا ادو بی اتایا کز لوقا فنا عدم مزمومون و نا انت نادو الا کل تیان الی ها بلجلی اذا وقعت فی مسمع اهل رو معنا کن تعدو ادایع دو یعنی جرایجی یعنی اسرع یسرقو از ادا یعنی دونده درستو پس تعدو یعنی تجری میدود یعنی توسرو یعنی سرعت میکنه این معنای لغوی الوقا یعنی الهرب یعنی جنگ میگه که و انی لتاعدو بی و من ان و لامم برا تأکید من حتما و حتما و حتما لتاعدو بی عطایاک به حرکت در میاره من رو ادابه یعنی حرکت داد به سرعت برد به حرکت در میاره من رو اتایای تو و در جنگ ها یعنی عطاهای تو که منو تو جنگ را میازم خودشم داره تو جنگ شریک میکنه. یعنی من اگر تو جنگ میام در کنار تو اسببی سوارم هم شمشیری به دستم هست در کنار تو دارم حرکت میکنم این من نیستم عطاهای تو منو داره میبره از مال تو شمشیر مال تو نیزه مال تو زره مال توه شجاعت مال تو من همون بغل مغلب قول خودمون به واسطه ای تو حرکت میکنم و این نیت تأدبی عطایاته عطایا فعال تعدوست فن واقع متعلق به تأدوس پس میشه همانا من به طور یقین این تعدوبی حرکت میدهد مرا عطایای تو در جنگ یعنی من کاری نیستم میام تو جنگ حالا یعنی خیلی با قول خودون نقش خود شد این شکلی که گفته یعنی اینکه که اگر از منم یک کسی که جنگ چیزی دید منم جلو اومدم منم اینطور اینطور همش مال تو بود تو میرفتی جلو ما یه جرعت بیدام کردیم میامدیم اصف مال تو بود میزه مال تو بود شمشیر مال تو بود شجاعت مال تو بود میگه فلا انم مزموم آمی. ولا انت نادمون. درسته که همه چی مال تو بود و ما هم کنار ولی فلا انا مزمومون من در این جنگ که در کنار تو بودم مضموم نیستم مردم بگن چی؟ بگن تو همه چی را آخه یک کسی از یک کسی یه چیزی میگیره دست پایینو داره آه این مورد مزمته میگه نه اینجا باعث افتخاره چیزایی که تو داده بودی من مزموم نبودم با اون که هیچ کاره بودم تو جنگ ولی مزموم نبودم مردم میگفتن گفتن ساویه ی سیف دوله بالای سرش در ساویه ی سیف دوله این کار ولا انا مزمومون ولا انت ناده بود و تو هم از این که لطفی به ما کرده بودی و مادر در کنار بودیم پشیمون نبودی چون یه موقع هست که کسی رو چیزی بهش میدن میاد فلان غیره پشیمون میگه اومده بود اونجا مزاهم در ما هم بود میگه و تو پشیمون هم نبودی نه من از اینکه در سای سار تو بودم مورد مذمت بودم چون اگه کسی در سای ساره کسی مثل سیه پوله باشه که مورد مذمت نیست و تو هم پشیمون نبودی نسبت به این که این چیزها رو به من داده بودی و منو کناره خودت داشتی چون من حق مطلب رو عدا کردم هم برات شعر گفتم هم یه جاهایی دفاع کردم آه قشنگ من شکر نعمت های تو رو کردم ازت تشکر کردم برات شعر گفتم یه جاهایی هم دفاع کردم پس تو پشیمون نیستی منم مورد مذمت نیستم یا اگر نگاه کن خاک که تو سرش هیچی از خودش نداره همه مال او باشه. پشت فلانیه آیم شده باشه کسی پشت تو قایم شه و همه چیز رو از تو داشته باشه مورد مذمت نیست همه میگن ببین سیف و دوله بهش داده ببین سیف و دوله اونا زیر بال و بالو پر خودش گرفت باعث افتخار هم هست باعث مذمت نیست قشنگ گفته و امنی لطعدوبی یعنی لطسر اوبی اتایا کفل وقا یعنی فلهر ف. میگه بنابراین فلا انا مزمومون ولا انت نادمون انشالله که فهمیدید من سعی وافرم اینه که شما خوب بفهم علا کل تیارین الیها به رجلی ازا وقع ادفی مسمعی هل قماقل. این علا متعلق است به اون نتعدو به خاطر همین گفتن بعضی هم گفتن متعلق به اون نادمنه حالا ما میگیم به اون تعدو بعضی ها هم گفتن که این اصلا متعلق به یه فعل مقدر یعنی عقص و دل وقع یعنی میرم به سوی جنگ علا کل تیاره علا کل تیاره خب پس چند تا هر کی گفتیم سه تا گفتیم متعلق به تعذو باشه یعنی از موقوف المعانی باشه این دوتا یا متعلق به نادم باشه یا اصلا کلا به جداست یعنی انا علا کل تیارن یا اقصد و علا اقصد الوقع اقصد دو علا کل تیارن تیار اینجا یعنی فرس تیار تیار یعنی پرنده آه یعنی برهر پرنده ای این برهر پرنده ای منظور یعنی برهر چون اسب وقتی که خیلی تیز پرواز باشه میگن میپره اقاب تیز پرواز شده دار شد کل تیاره الهی ها الهی ها یعنی به سوی وقا جنگ به رجلهی را میخوره به تیاره. اما این میپره اما با پاهاش بال نداره بر هر اسب تیز پروازی به سوی جنگ با پایش ازاق وقاعات این مسماع اهل زمانی که واقع شود در دو گوش این اسب محل قماقم قماغم جمع قم قم است یعنی صدا همهمه ی جنگ صدای پهلوانان تو جنگ بیا برو بزن بکش اینطور اونو میگن قمقمه هم همهمه ی جنگ از وقعت فی عیهل قوا دمون. یعنی اون صدای همه همه در همه پهلوانان در میدان جنگ اونو میگن میگن قماقم جمع قمقمه خب میگه اینی لطعدو بی اتایک عطاهای تو منو حرکت میده در جنگ بر کل عصب بر هر عصب پرندهی به سوی این جنگ با پای خود یعنی هر که با پا داره پرواز مگه مثل چه اضافه وقت که من سرعت میگیرم با این اسب زمانی که واقع شود در دوگوش این اسب بگو الغماطب. یعنی این اسب که تو به من دادی صدای پهلوانان جنگی رو میشناسه میشنوه میره من هم ور میداره بگید میبره یعنی عصبی که من روش سوار شد درسته من حجوم کردم سریع آمدم اما این حجوم و سرعت من مخیل عصبی بود که زیر پام بود و اسبم تو داده بودی اسب تیز بروازی بود جوری که صدای پهلوانان میدان جنگ به گوشش که میرسید مسمع یعنی اوزنه دو گوشش میخورد این صدای پهلوانان این سرعت می‌کرد به سوی میدان جنگ وای نمیستاد ازا وقعت زمانی که واقع شود این ای ازا متعلق به تیار است او تیار است به سوی میدان جنگ با دو پایش در وقتی که واقع شود در دو گوشش هم همه میدان جنگ اون الیها متعلق به تیار به رجلهی متعلق به تیار ازا وقت هم متعلق به تیار یعنی او پرواز میکنه اون از به سوی میدان جنگ با دو پایش در وقتی که بنشیند در دو گوشش هم همه مردان جنگی علاقل تیار. حالا این علاقل تیار متعلق به لط... لطعدو باشه یعنی من هرکم یا تو پشیمان نیستی بعضه بودم متعلق به اون نادمه تو پشیمان نیستی بر هر اسبی که به من دادی اینطوریه. و اگر نخوایم این دوتارم معنا کنیم به یک مستقل بگیریم درست شد میشه چیه؟ اقصدل هربن میرم به سوی جنگ علا کل تیاره بر هر عصبی که چنینه یا انه علا کل تیاره خبر مددهای محصولی شاهد چیه؟ شاهدینه که من اسب سوارم اسب داره حجوم میکنه به سوی میدان جنگ ولی اسب تربیت شده توی این اسب هدیه توی یعنی میخواد بگه که همه شجاعت میدان جنگ از تو بود ما تو توی میدان جنگ با قول خودمون یک وسیلهی و این وسائل به حساب مطلب واقع ندیش ملا کل تیار این ها به رجلهی ازا وقعت فی نسمعی هن قما خیمون این رو هم گفت توی کتاب خودتون پایین نگاه کنید توی اون میگه که التیار المصره من هم یعنی تاهیر پرنده ولی اینجا منظور یعنی اصبی که سرعت میگه الان متعلقتون به تعدود و المسمعان ال اوزنان قم گفته جلبت حرف سر و صدای حرف درست شو. سر و صدای مردان جنگی رو میگن قمقمه جمعش قمقه خب هر کدوم رو بگیرید متعلق به تعدود هم قشنگی از همش بهتر تعدود میتونه هم این مطلب باشه یعنی اگر بخواهیم درست شد دو تا بیت رو مثلا یه معنای من بگم براش بنویسیم مثلا یه حالتی که اون الان متعلق به تعدو بشه اینطور میشه یعنی توتهیه روی بنویسید یعنی به پرواز دربییم میاریم اطایا کن اطایای تو ای ای یعنی یعنی خیلو کن رو معنا کردم اینی ای این تا اینجا شد اینی تعدو بی اطایا کن اینی تو تیرونی اطایا کن ای خیلو کن در میدان جنگ بروش اون فلوقا یعنی فلحف علا کل علا کل متعلق به توتیرانی که توتیرانی رو بذاشتم جایی تعدو آه. علا کل خیلن تیارن تیار شد صفت خیل یعنی حصل علا کل خیلن تیارن الیها به سوی میدان جنگ به رجلهی با پاش. هینا نه. مینارو هی نه گذاشتم جای یزا هینا مگاهت تی اوزنای اوزنای رو گذاشتم جای مسمع تی اوزنای اسواتول ابتان اسواتول ابتان اسواتول ابتان گذاشتم جای قماقه عل اسوات یعنی عل قماق قماقه یعنی اسواتول پس این جور میشه تو تیره این ای خیلو که سلحربه علا کل خیلن تیارن الیها به رجلهی هینم وقعت سی ازنیه اسواتل ابتانه ابتال جمعه بطل یعنی برنمان یه چه قشن معنا شد هر دو طبی. اون فلاعنم از مومون وله انت نادمون رو اون جداست اونو دیگه جدا خصفش کردن توی ترکیب چون چو بنابراین این علاق متعلق کردن به تعدو معنا کردن یعنی حالا اگر اون توتیرانی رو قبلش بنویسید اینی توتیرانی میگه اینی لطعدو قشن مشخص بشه. تو تییرونی اینی تو تییرونی اتایا کرد ای خیلو کرد فی الهربه کل خیل تییاری الهی ها برش بهی هیل وقت فی اوزوی نیه الاسوا الاسوا خب با توجه به این که ماه مبارک رمضان هم هستش آه و بحث ما هم در این ماه در این ساعت واقع شده بود همین مقدار رو کفایت میکنه انشالله سه بیت بعدش رو با قصیده بعدش رو هفته آینده براتون خواهم خوند هفته آینده هم لطف کنید همین ساعت بیایید همین ساعت بیایید که الان یکی دو هفته که احتمالا ما جلسه داشته باشیم تو این شراحیط کورونای ملعون که نتونستیم هی جلسات گذاشتن لفت شد احتمالا بعد از این شرایط داره بهتر میشه انشاءالله این کارو خواهند کرده که من این مبحث رو همین ساعت ادامه میدیم در خدمت شما اصلا دیدید که من انقدر لغت عبارت. احراب مطلب منامه کنم که دیگه اگر کسی سر کلاس شنیده باشه هیچ وقت اینها فراموشش نخواهد شد سعیم بکنید همین مقداری که یاد میگیرید و خوب یاد بگیرید. که الله براتون کارگوشا باشه هم از نظر لغت، هم از نظر احراب، قواعد، فهر، ترجمه تا بتونید استفاده خوبی بدهد باز هم خدمت شما اید فطر رو تبریک میگم انشالله از خداوند ایده خوبی بکنید. و سلام علیکم و رحمت الله و